یکی از عزیزان تلفنی پرسیدن حدیثی را که دیشب از کافی خوندم که اون زن یهودیه گوشت گوسفند رو مسموم کرد و برای پیغمبر آورد پیغمبر فرمودن چرا میخواستی مرا مسموم کنی گفت خواستم ببینم پیغمبری یا نه اگر پیغمبری خبر میدهی اگر نه مردم را از تو راحت کنم و پیامبر وقتی این خبر رو دادن و او را عف کردن او هم ایمان آورد پرسیدن پس چرا بقیه معصومین مثل مثلا امام مجتبا که مسموم شدند نفرمودند این غذا یا این آب مسموم است و من نمی خورم. یا امام کاظم و امام رضا و ائمه دیگر رو غذای مسموم دادن اونها بیان نفرمودند این سوال بنده رو وادار کرد دقت در روایات و درایت روایات که بسیار مهم و اساسی است یک اشاره ای داشته باشم همونطور که در قرآن کریم ما داریم و کرارن بنده این رو تذکر داده مبادا به ظاهر روایات اکتفا کنیم کما اینکه تنها به ظاهر آیات اکتفا کردن پسندیده نیست اگر شما فقط به ظواهر آیات نگاه کنید مگر یک جا قرآن نمیفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم در جای دیگر قرآن میفرماید ما ما رمی رمیت رمید لاکن الله رما آیا ظاهرا این دعای با هم معارض نیست؟ اما در واقع این گونه نیست؟ جمبندی این آیات تعادل این آیات چه میشود لا جبره ولا تفیز بل امرون بین الامرین اونجا که سخن از قدرت پروردگار است ما رمیت از رمیت اونجا که سخن از دخالت نیروی خودتون و استفاده از اراده و اختیار است لیسل للانسان الا ما سعا کل نبسن به ما کسبت رهینه این همونگونه که در آیات داریم در روایات هم بسیار داریم همینجا دقت بفرمایید، آیا زن یهودیه به این نیت سمرا آورده که اگر پیغمبر است خبر بدهد اینجا اگر پیغمبر خبر ندهد یک انسانی که راهی را برای هدایت شناخته آن را جواب نمیدهد و گمراه میشود، پس اینجا تکلیف پیغمبر است که تذکر بدهد ولی مگر به اعتقاد ما حتی تفسیر عیاشی و تفسیر علی ابن ابراهیم قمی در زیل همین آیه 144 سوره آل امران نقل می‌کنند که به پیغمبر زهر خورانیدن و پیغمبر مسموما از دنیا رفته و پیغمبر هم شهید است پس اونجا چرا نفرمودند چون اونجا سخن از امتحان پیغمبر نبود میدانست پیغمبر است ولی میخواست او را مسموم کند اونجا پیغمبر مأمور به ظاهر میشود همونگونه که امامان دیگر اگر زهر به امام خرانیدن، نگفتن امام را امتحان میکنیم اگر امام است بگوید اگر این بود امام علیه السلام هم میفرمودن کما اینکه که امام کاظم فرمودن میدانم در این خرما. امام رضا فرمودن میدانم در این انگور چه قرار داده اید، ولی ما مأمور ظاهر هستیم، پس این دوتا رو از همدیگه تفکیک کنیم.